فصل بیست به طرف بخش ارشانس مجبور شدم سه دفعه بپرسم تا بالاخره کسی مسیر درست را نشانم داد سرانجام نفس نفس از در باد بزنی بخش سی دوازده گذشتم. نیتن را دیدم که نشسته است و روزنامه میخاند همین که نزدیک شدم سرش را بالا گرفت حالش چطوره؟ زیر اکسیجن خوب نمیفهمم شب شنبه که حالش خوب بود، صبح شنبه کمی صرفه می کرد، ولی، ولی این دیگه چی بود؟ چه اتفاقی افتاده قلبم تاپ می میزد لحظه نشستم تا نفسم سر جا بیاید، از یک ساعت پیش که پیام نیتن را دریافت کرده بودم، همینطور داشتم میدویدم نیتن راست نشست و روزنامه تا کرد. اه. لو با رل نیست گاهی ریها شفونت میکنه. درست نمیتونه خلت بالا بیاره سودارش خوب میشه. شنبه بعد از اور همه زورم زدم تا کاری براش بکنم ولی خیلی درد داشت. بیدلیل تب کرد. درد شدیدی توی ای سینه داشت. شب یه شد مجبور شدیم ما خبر کنیم باید به زنگ زدم ولی ویل اصرار کرد که مزاحمت نشیم. خم شدم. توفه این میتونم برم داخل. الان بی حاله. نمیتونه حرف بزنه. خانم ترینر هم پیششه. کیفم رو پیش نیتن گذاشتم و دستم رو با لوسیانه ضد باکتری تمیز کردم. بعد در رو به جلو هل دادم و وارد شدم. ویل روی تخت خوابیده بود. پتوی آبی رویش کشیده بودم سروم داشت و انواع و اقسام تجهیزات پزشکی اطرافش را گرفته بود ماسک اکسیژن روی صورتش بود و چشمش بسته بود پوستش خاکستری به نظر میرسید با تهرنگی از سفید متمایل به آبی با دیدن آن بدنم منقبض شد خانم ترینر کنارش نشسته بود یک دستش روی دست پوشیده ی ویل بود و به دیوار روبرو ماتش برده بود گفتم خانم ترینر از جا پرید و سرش را بالا گرفت حالش چطوره؟ دلم میخواست جلو بروم و دستش را بگیرم اما حس میکردم قادر به نشستن نیستم همانجا کنار در ایست دادم چهره خانم ترینر چنان محصون و زده بود که حتی ایستادن در اتاق هم به آدم حس مزاحمت میداد کمی بهتره بژ که قوی دادن کاری هست که من بکنم نه فکر نکنم فقط فقط باید منتظر بمونیم پزشک مشاور حدود یه ساعت دیگه میاد و سر میزنه امیدوارم اطلاعات بیشتری به ما بده انگار دنیا متوقف شده بود کمی بیشتر استادم. صدای یک نواخت دستگاه ها در گوشم تنین میانداخت. میخواید من کمی پیش ویل بمونم و شما برید استراحت کنید. نه. میخوام خودم بمونم. بخشی از وجودم آرزو می کرد ویل صدایم را بشنود. بخشی دیگر امیدوار بود که چشمان ویل در بالای آن ماسک پلاستیکی باز شود و زمزمه کند. کلارک، تو رو خوده بیا و بشین. خوب نیست اونجا بیستی. اما او فقط دراز کشیده بود صورتم را پاک کردم و گفتم میخواید براتون نیشیدنی بیارم خانم ترینر نگاهم کرد ساعت چنده یک رو بدم جدی سرش را تکان داد باورش برای او سخت بود لویزا ممنون لطف داریم میخوام کمی بیشتر بود روز جمعه مرخصی رفته بودم. بخشی به این دلیل که خانواده ترینر اصرار کردند که یک روز مرخصی طلب دارم. اما بیشترش به این خاطر بود که برای گرفتن گذرنامه چاره جز سفر به لندن با قطار رو ایستادن در صف پتی فرانس نداشتم. شب شنبه موقع برگشت یک توک پا به منزل ترینر رفتم تا دستاوردم را نشان ویل بدهم و بگویم که گذرنامه خودش هنوز اعتبار دارد. به نظرم آمد که کمی ساکت است ولی اصلا فکر نکردم که مشکلی وجود داشته باشد بعضی روزها حالش زیاد خوب نبود و من خیال کردم یکی از آن روزهاست راستش را بخواهید چنان ذهنم درگیر برنامه های سفر بود که اصلا به چیز دیگری فکر نمیکردم. صبح شنبه با پدرم رفتم خانه پاتریک و وسایلم را جمع کردم بعد از ظهر هم با مادرم بیرون رفتم و مایو و چیزهای مورد نیازم را برای سفر خریدم. شنبه و شب یک شنبه را نزد خانواده ماندم. ترینا و توماس هم بودند و ما به سختی در هم چپیدیم. صبح دوشنبه ساعت هفت از خواب بیدار شدم و ساعت هشت دمه در خانه ترینر بودم. وقتی رسیدم دیدم کسی خانه نیست در پشتی و ورودی خانه قفل بود. هیچ یادداشتی هم نگذاشته بودند. جلوی در ایستادم و سه بار به نیتن زنگ زدم ولی جواب نداد تلفن خانم ترینر را هم که میگرفتم میرفت روی پیامگیر تا بالاخره بعد از چهل و پنج دقیقه که همینطور بلا تکلیف روی پله نشسته بودم پیام نیتن رسید ما توی بیمارستان محلی هستیم ویل زاتوریه شده بخش سی دوازده وقتی من رسیدم نیتن بیمارستان را ترک کرد بیشتر از یک ساعت بیرون اتاق ویل نشستم. چند مجله به تاریخ سال 1982 روی میز بود که ظاهرا کسی آنجا گذاشته بود. همه را ورق زدم. بعد کتابی از کیفم درآوردم و شروع به خواندن کردم. اما تمرکز غیر ممکن بود. پزشک مشاور از راه رسید. ولی حس کردم حالا که مادرش داخل اتاق است بهتر از وارد اتاق نشوم 15 دقیقه بعد مشاور بیرون آمد. خانوم ترینر هم دنبالش آمد خانوم ترینر با صدایی گرفته و با لحنی آسوده به من گفت که پزشک مشاور اطمینان داده عفونت را کنترل کردهاند نمیدانم چرا به من گفت شاید فقط چون میخواست با کسی حرف بزند و کسی هم غیر از من حاضر نبود نوع باکتری که ویل دوچارش شده بود بسیار خطرناک بود خوشبختانه ویل را به موقع به بیمارستان رسانده بودند وگرنه این وگرنه میان من و خانم ترینر در سکوت معلق ماند. من گفتم خب، حالا باید چی کار کنیم؟ شانه بالا انداخت میل دارید براتون نهار بیارم؟ یا اگه میخواید من کنار ویل بشینم تا شما بهت خونه و چیزی بخورید؟ فقط گاهی پیش میامد که من و خانم ترینر به درک مشترکی برسیم. صورتش کمی ملایم شد. حالا که قیافش مثل همیشه جدی و خشک نبود میدیدم که چقدر خسته به نظر می رسد. فکر می کنم از اولین روزی که او را دیدم ده سال پیرتر شده بود. گفت ممنونم لویزا. اگه اشکالی نداره و می پیش ویل بمونی من بدم نمیاد برم خونه و چرتی بزنم و علباسم رو حوض کنم. دوست ندارم این لحظات ویل تنا بعد از رفتنش وارد اتاق ویل شدم و در را پشت سرم بستم. کنارش نشستم. کاملا قایب بود. ویلی که من میشناختم به سفر رفته و فقط پوستش باقی مانده بود. در این فکر بودم که یعنی افراد اینطوری می میرند. بعد به خودم نهیب زدم که به مرگ فکر نکن. همینطور نشستم و به تیک تاک ساعت گوش دادم گاهی از بیرون صدای حرف می آمد و صدای قدم های نرمی که روی کف پوش برداشته می‌شد. پرستار دوبار آمد و همه چیز را کنترل کرد. یکی دو دگمه را فشار داد. دمای بدنش را گرفت. ولی ویلتکان هم نخورد. پرسیدم، حالش خوبه نه؟ پرستار با اطمینان گفت، « خوابیده، در حال حاضر براش بهترین چیزه، نگران نباش. گفتنش راحت بود، اما من همینطور که توی اتاق بیمارستان نشسته بودم فکرم هزار جا رفت. به ویل فکر می کردم و اینکه چقدر سریع این سخت بیمار شد. به پاتریک فکر می کردم و به این واقعیت که حتی وقتی وسایلم را از آپارتمانش جمع می کردم و تقویم دیواری را بر می داشتم و لوله میکردم کردم لباسهایی را که با دقت فراوان در کشوها چیده بودم بر می داشتم و بسته بندی میکردم ذره احساس اندوه نکردم. و انتظارش را هم نداشتم. ناراحت و قمگی نبودم یا دلشکسته و مستاصل و یا هر احساس دیگری که وقتی آدم از رابطه اشقی چندین سالهی بیرون میآید طبیعی است در خود داشته باشد. کاملا آرام بودم و فقط کمی متاسف. شاید یک جورایی هم احساس گناه می بخشی چون عامل اختلاف شدم و بخشی هم به این واقعیت برمیگشت که آنجور که باید و شاید اوضا را درک نکردم دو پیام برای پاتریک فرستادم و گفتم که از ته دل متأسفم آرزوی موفقیتش را در مسابقه کردم ولی پاتریک جواب نداد یک ساعت بعد به جلوخم شدم و پتو را از روی دست فیل کنار زدم دستش قهوه بی بیرنگ در تزاد با سفیدی ملافه بود به پشت دستش آن وصل بود و چسب جراحی زده بودند وقتی دستش را برگرداندم کبودی جای زخم همچنان روی مچش دیده میشد. متعجب بودم که آیا هیچ وقت از بین خواهد رفت یا برای همیشه میماند و یادآور کاریست است که ویل با خود کرده دستش را آرام توی دست خودم گرفتم و فشردم گرم بود دست یک انسان زنده کسی که جان داشت چنان حسی به من داده بود که همینطور توی دستم نگهش داشتم. به پینه های دستش زل زدم که از روزهایی میگفتند که فقط پشت میز سپری نشدند. به ناخونهای صورتی صدفی نگاه کردم که همیشه دستهای های آرایشگر مرتبش میکرد. دستهای دست های ویل دست یک مرد تر و تمیز بود. زیبا و خوشفرم. با انگشتانی چارگوش. نمیشد به آن نگاه کرد و فکر کرد که قدرتی ندارد. اینکه دیگر هرگز نمیتواند چیزی را از روی میز بردارد، دستی را نوازش کند یا حتی مشت کند. روی مفصل انگشتانش دست کشیدم. دوست داشتم بدانم اگر فیل همین حالا چشم باز کند، آیا دست با چه می‌شوم؟ اما هیچ حدثی نمی زدم فقط به این فکر میکردم که قطعا برایش خوب است که حس کند دستش توی دست من است یک جورایی آرزو میکردم حتی حالا هم که با داروی خواب به خواب رفته است چنین چیزی را حس کند چشمم را بستم و منتظر ماندم ساعت چهار گذشته بود که اقبت ویل بیدار شد بیرون توی راهرو روی صندلی نشسته بودم و روزنامه ای را رو می خاندم که کسی روی صندلی گذاشته و رفته بود وقتی خانوم ترینر آمد و خبرش را داد از جا پریدم گفت که حرف میزند و میخواهد مرا ببیند حالا چهره خانوم ترینر آرام تر شده بود خانوم ترینر گفت که می رود طبقه پایین و به آقای ترینر زنگ میزند. بعد طوری که گویی دست خودش نبود ناخداگاه گفت لطفا خستهش نکن. گفتم چشم حتماً. میدانستم لبخند ملیحی به لب دارم. به داخل اتاق سرکشیدم و گفتم هی hey. سنا صورتش را آرام به طرف من برگرداند. هی hey. تایی صدایش خشدار بود. انگار سی و شش ساعت گذشته را نخابیده بلکه فریاد زده است نشستم و نگاهش کردم چشمش به سمت پایین حرکت میکرد. میخوای چند لحظه ماسکو از روی صورتت بردارم با تکان سر موافقت کرد با احتیاط ماسک را به سمت بالای سرش کشیدم در جایی که ماسک روی پوستش قرار میگرفت لایه نازکی از عرق دیده میشد دستمال کاغذی برداشتم و آرام صورتش را پاک کردم. چه داری؟ بترم. بی اختیار بغز کردم. اما سعی کردم قورت بدم. ویلی واقعا سر در نمیارم. لابد این کارا رو برای جلب توجه هم میکنیم. شرط میبندم فقط به خاطر... چشمش را بست و نگذاشت طرفم رو ادام دهم. بعد که دوباره باز کرد حال از پوزش در آن وجود داشت. ببخشید که لارک مثل اینکه امروز حواصله شوخی ندارم. در آن اتاق کوچک سبز کمرنگ نشستیم و من حرف زدم. همینطور طور وراچی میکردم و از جمع کردن وسایلم از خانه پاتریک گفتم و اینکه چقدر راحت توانستم سیدی هایم را از میان سیدیهایی او جدا کنم. دلیلش هم این بود که پاتریک اصرار داشت زیدی ها را فهرست کند. ساکت که شدم، ویل پرسید. خودت خوبی. همدلی در ششمانش موج میزد. فکر میکردم خیلی ناراحتم. شانه بالا انداختم. آره، خیالت راحت. خیلی سخت نبود. چیزای دیگه ای داشتم که فکرمو مشغول کنه. ویل سکوت کرد. بعد گفت این چیزای دیگه مطمئن نیستم به این زودی ها بتونم با تنابه کشی پرش کنم خودم میدانستم. از از همون لحظه ای که پیام نیتن را دریافت کردم می توانم بگویم که تقریبا مطمئن بودم اما شنیدنش از زبان فیل برایم ضربه یکوبندهی بود گفتم نگران نباش. اشکالی نداره. یه وقت دیگه میریم. تلاش کردم با لحن خوبی حرف بزنم. شرمندم. میدونم بچور ساقش رو داشتی. دستم رو روی پیشانیش گذاشتم و موهایش رو عقب زدم. هیس مهم نیست. اصلا. تو فقط خوب شد. چشمش رو بست. خم خفیفی روی پیشانیش ظاهر شده بود من معنی این چین های دور چشمش و اون قیافه بردبار را می دانستم می گفتند که احتمالا قرار نیست وقت دیگری وجود داشته باشه می گفتند که او فکر نمی کنن. هرگز خوب شد بیمارستان که برمیگشتم سری به خانه ی ترینر زدم. پدر ویل که به اندازه خانم ترینر خسته به نظر می‌رسید، دعوتم کرد تو. کاپشن کهنه ای دستش بود و ظاهرا داشت میرفت بیرون. گفتم که خانم ترینر پیش ویل مانده است. آنتی بیوتیک هم خوب عمل کرده. خانم ترینر از من خواسته بود به شوهرش بگویم که شب را پیش ویل میماند. نمیدانم چرا خودش نگفت. شاید سرش شلوغتر از این بود. ویل چطوره؟ از صبح بهتره وقتی پیشش بیدم نوشیدنی خورد پشه سر یکی از پرستاره هم حرف زد هنوزم خودشه آره هنوزم خودشه ای دیدن دهان آقای ترینر جمع شد و چشمانش برق زدند صورتش را برگرداند و به بیرون پنجره نگاه کرد بعد دوباره سرش را به طرف من برگرداند. شاید ترجیح میداد نگاهم به او نباشد نمی داند دو هم ظرف دو سال لحظه ای طول تا منظورش را بفهمم زاتوریه؟ سرش را تکندد گفتی نکفتی ویل با همه اون هارتو پرداش آدم شجاعیه. آب دهانش را گردد و سری با خودش بود لویزا، چه خوب که متوجه ای نمیدانستم چه بگویم دستم را دراز کردم و روی بازویش گذاشتم بله متوجهم دوباره سرتکان داد بعد کلاه حسیریش را از جالباس داخل حال برداشت چیزی زیر لب زمزمه کرد که احتمالا تشکر بود یا خداحافظی. از کنارم گذشته از در اصلی خانه خارج شد. بخش فریع خانه بدون حضور فیل خاموش و قریب بود. میدیدم چقدر عادت کردم از دور صدای صندلی چردار موتوردارش را بشنوم که عقب و جلو می کندند. را وقتی در اتاق بقلی با نیتن حرف میزند و وزوز وز رادیویش. حالا خانه سود و کور بود. حس می کردم خانه دارد مرا میخورد. وسایرش را جمع کردم. چیزهایی که برای خواب و روز بعد احتیاج داشت همه را درون ساک گذاشتم از جمله لباس تمیز، صفاک، بروس مو و دارو و حتی گوشی را هم برداشتم تا اگر حالش خوب بود آهن گوش بدهد همینطور که جمع می کردم وحشت عجیبی به جنم افتاد صدایی ویرانگر در درونم میپیچید و می گفت اگر بمیرد همینطور می شود صدا را در خود خفه کردم رادیو روشن کردم و کوشیدم سر و صدایی ایجاد کنم و به خانه روح ببخشم. کمی نظافت کردم. ملافه های ویل را عوض کردم و چند شاخه گل از باغ چچیدم و توی اتاق نشی من گذاشتم. بعد که همه چیز را رو به راه کردم نگاهی به اطراف انداختم. چشمم به پوشی سفرمان افتاد. روز بعد باید دنبال کارهای دفتری میرفتم و سفر و هر برنامه تفریحی که ترتیبش را داده بودم لغو می کردم. اصلا نمیشد پیش پیشبینی کرد که حال ویل اینقدر خوب شود که به به سفر برود. پزشک که مشاورش تأکید کرده بود که ویل به استراحت نیاز دارد و باید دوره آنتی آنتیبیوتیک را تا آخر تکمیل کند. باید خشک و گرم بماند. کلک سواری در تندباد و قواسی با ماسک اکسیژن نمی بخشی از برنامه دوره نقاهت باشد. به پوش زل زدم. به تمام آن تلاش و تقلاها و امیدها، به گزرنامه هم زل زدم که برای دریافتش توی صف ایست یادم آمد توی قطار که نشسته و آزم لندن بودم چقدر زوق و شوق داشتم. اولین بار بود که طبق برنامه ای عمل میکردم. احساس اندوه و ناامیدی به من دست داده بود. فقط سه هفته باقی مانده بود و من نتوانسته بودم کاری از پیش ببرم. پایان قرار دادم نزدیک بود و من نتوانسته بودم کاری کنم که فیل تغییر عقیده بدهد. یک بار احساس درماندگی کردم. در سکوت آن فضای کوچک نشستم و سرم را میان دستانم گرفتم. عصر خیر سرم را بالا گرفتم. نیتن مقابلم ایستاده بود. هیکل گندش فضای کوچکی آشپزخانه را پر کرده بود. کوله پشتی از شانه‌اش آویزان بود. مورد نیازش موردنیازش آوردم برای وقتی که برگشت خونه. تو خوبی؟ فوری چشمم را پاک کردم و گفتم. آره. آره. فقط نگران به هم خوردن برنامه ی سفرم. نیتن کوله پشتی رو از شانهش پایین آورد و رو به روی من نشست. آره خیلی بد شد. بوشه رو برداشت و فرق زد. فردو کمک میخوای؟ بیمارستان به امه نیست. صبح میتونم یک ساعتی بیام و کمکت کنم و به اینجا اونجا زنگ بزنیم. لطف داری؟ من خودم میکنم. راحت اگه خودم همش انجام بدم. نیتن چای درست کرد و روبروی هم نشستیم و نوشیدیم گمان می‌کنم اولین بار بود من و نیتن با هم مینشستیم و حرف میزدیم. دستکم بدون حضور ویل نیتن از کار قبلیش حرف زد معلول با آسیب دیدگی مهره سه و چهار با دستگاه تنفس مصنوعی در مدتی که برایش کار کرده بود دستکم ماهی یک بار مریض می شد. نیتن از دفعه قبل که ویل به زاتوری دوچار شد حرف زد و گفت که چیزی نمانده بود تمام کند بعد هم هفته ها طول کشید تا حالش خوب شد وقتی مریضش جدی باشه چشماش این حالتی میشه خیلی درست نکه طوری که انگار پس رفته انگار اصلا نیست میدونم خودم چقدر از این نگاهش بدم میاد ویل یکی م... <تصفح> بعد یک بار نگاهش را از من دستید و دهانش را بست همینطور نشستیم دیوان چای دستمان بود زیرچشمی به نیتن نگاه میکردم به صورت گشاده و مهربانش که محسون بود میخواستم چیزی بپرسم که خودم جوابش را میدانستم تو خبر داری نه چه خبری که که میخواد خودشو بکشه سکوتی ناگهانی و مطلق برقرار شد نیتن با دقت به من نگاه کرد داشت با خودش سبوک و سنگین میکرد چه جوابی بدهد. گفتم. من میدونم. تصادفی فهمیدم. برای همین ترتیب این سفر رو دادم. برای همین برنامه گردش میذاشتم. زورم رو میزدن تا منصرف شه. نیتن لیوان را رو روی میز گذاشت. گفت. تعجب میکردم. انگار مأموریت داشتی. آره. داشتم. سرش را تکان داد. نمیدانم منظورش از این سری که تکان داد چه بود. شاید میخواست بگوید نباید تسلیم شوم یا کاری نمیشود انجام داد. نیتن، می‌خאי چیکار کنی؟ لحظاتی طول کشید تا جواب داد. لو، میدونی. من از قلب دوستش دارم اصلا برام مهم نیست که بهت بگم واقعا دوستش دارم دو سال میشه که دارم براش کار میکنم حال روز خرابش رو دیدم روزای خوبش دیدم فقط میتونم بگم که اگه دنیا رو به هم میدادن حاضر نبودم چای فیل باشم جرقه ای از لیوان چای را سر کشید که شب اینجا خوابیدم دیدم صبح فریاد سنان از خواب بیدار شد میدونی چرا؟ چون خواب دید که داره راه می اسکی میکنه می کنه. گاهی که بیتاقت میشد و آزا کمی وخیم از فکر این که دیگه نمی این کار رو بکنه پاک دیوونه می شد نداره من کنارش میشینم و هیچ حرفی برای گفتن ندارم هیچ حرفی که بتونه آرومش کنه واقعا بد آورد بده از این نمی شد دیشبه زدم و به زندگیش فکر کردم و اینکه که این که بزرگترین آرزوم توی دنیا شادی این مرده برای نمیتونم در مورد کاری که میخواد بکنه ازار نظر بکنم قضاوت کنم خودش باید انتخاب کنه خودش باید تصمیم بگیره نفسم در نمی آمد. اما مربوز به قبل از اومدن منه همتون گفتین که مال قبل از اومدن منه حالا فرق کرده حالا که من کنارش هستم فرق کرده خیلی نه؟ آره صد درصد ولی... ولی ایمان نداشته باشیم که ایسه بهتری پیدا میکنه. حتی حالش بهتر میشه. چطور خودش باور کنه که زندگی میتونه بهش روی خوش نشون بده؟ نیتن دیوانش رو روی میز گذاشت. صافت توی چشمم نگاه کرد. لو، حالش بهتر نمیشه. تا از کجا می تونی؟ تا اینکه تحقیقات سلولای بنیادی به پیشرفت بزرگی برسه دست کم ویل ده سال دیگه باید روی صندلی چرخدار بشینه شاید پدر و مادرش قبول نداشته باشند ولی خودش میدونه نصف مشکل اینجاست مادرش میخواد به هر قیمتی شده زنده نگهش داره به نظر آقای ترنر چاره ای نداره جز اینکه بذارن خود ویل تصمیم بگیره البته خودش باید تصمیم بگیره از طرفی هم باید همه گوزینه‌هاش رو خوب بررسی کنه. جوون باهوشیه. خودش دقیقاً میدونه چه گوزنی براش خوبه. صدایان در آن فضای کوچک بالا رفت. نه. اشتباه می‌کنی. اشتباه می‌کنی که میگی همون آدمیه که قبل از اومدن من بود. تو میگی از وقتی من اومدم حتی سر سوزنی هم فکرش عوض نشده. لو من که نمیدونم تو مغزش چی میگذره. تو میبینی که طرز فکرشو عوض کردم. اینطور نیست. من میدونم همش به خاطر خوشحال کردن تو. به نیتن چشم دوختم تو فکر میکنی رفت تکلیفه؟ فقط بر اینکه من خوشحال شم؟ از دست نیتن عصبانی بودم. از دست همهشان. پس اگه خیال میکنی این کارا هیچ کدوم فایده ندارن چرا میخواستی با ما بیای؟ اصلا چرا قبول کردی بیای؟ فقط برای اینکه بریم مسافرت؟ نه، میخوام زنده بمونه. اما... اما میخوام زنده بمونه. اگه دلش نمیخواد به زور نمیشه اصلا هم مهم نیست که ما تو چقدر داریم. میشیم یکی از اون افراد کوفتی که حقش رو ازش گرفتیم. حرف نیتن در سکوت خانه تنی نداخت. اشک روی گونم را پاک کردم و تلاش کردم قلبم عادی شود. پیدا بود نیتین با دیدن اشکم دست پاچه شده است. بی اراده دستی به گردنش کشید و بعد از یک دقیقه بی آنکه حرفی بزند دستمال مال کاغذی دستم داد. نیتین نمیذارم چنین چیزی پیش بیاد. <تصفح> چیزی نگفت. مطمئن باش من نمیذارم. به گذرنامه روی میز نگاه کردم. دردناک به نظر میرسید. انگار آدم بود و حس داشت. آدمی که زندگیش وجودش مثل من واقعا هیچ چیز نبود و پس چیزی ارزش نداشت. در افکارم بودم و ماتم برده بود. نیتن. بله. اگه ترتیبه یه سفر دیگر رو بدم، اونجوری که دکتر موافقت موفقت کنن هنوزم حاضری بیای. هنوزم حاضری کمکم کنی. البته که تو آخرش هستم بلند شد لیوانش را آب کشید کل پشتی را روی شانه گذاشت قبل از ترک آشپزخانه جلو آمد و رو به رویم ایستد اما لو باید راستشو بگم مطمئن نیستم حتی خاطر خادر باشی برنامه جدید تو هم پیاده کنی